اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبی بعده اما بعد السلام عليكم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز و شنوندگان محترم ما شما سلسله درس های دولت نبوی را شروع کرده بودیم و در درس گذشته ما شما بالای عمومیات دولت نبوی صحبت کردیم و از کلیات یادآوری کردیم و یادآوری کردیم که دولت نبوي یک دولتی بود که الگوی مقاومت و صبر و استقامت در یک حالت استقامت میکردن که تحت باران توبها و جنگای شدید و در هر صورت مو شما بیان کردیم که در قربانی نفس و مال و همچنان در استقامت در مقابل ترس و گرسنگی و فقر و کم شدن مال و نفس و فصلها و در این حال بالای مسائل زدیم و در بالای دیگه عمومیاتی که قرار بود باید گفته شود مثلا ما گفتیم که آیا یک نظامی بود که هیچ نوع مشکل بالایش نمی آمد یا یک نظامی بود که لشکرش از همه نگاه مسلح بود یا یک نظامی بود که دارای بعضی محدود ها بود ما گفتیم که بعد از او انشاالله از درس سنس درس سااح و هر درس بالا یک یک مسئله یعنی به تفسیلات میپردازیم ما امروز به تفصیل اجمال می پردازیم که روز گذشته انجام داده بودیم و شروع میکنیم از سرزمینی که بر آن رسول الله والله و وصللم هجرت کردند اهداف درس مرروزییم مشما است که مژما بیایم بدانیم که به سرزمینی که رسول الله صلی الله علیه و هجرت کرد، چگونه یک سرزمین بود و مشکلاتی که بالای اهل دولت اسلامی در مدینه آمد، چگونه مقاومت کردن و چگونه استقامت کردند. آیا یک سرزمینی بود که از هر نو امکانات محیا بود، دارای آب و آشامدینی درست، دارای فضای درست، دارای آب و هوای مناسب بود یا یک سرزمینی بود که از نگاه صحی و از نگاه آب آشامدینی از هر نگاه دارای مشکلات بود؟ هدف سیم است که ما خواهیم که به مردم به اهل دارالاسلام این مسئله را برسانیم که زمانی که سختی ها و مشکلات دامنگیر اهل یک نظام میشه و اهل خلافت میشه چیگونه برخورد کنن بوی و چیگونه اقدام کنن بوی مثلی که ما شما فعلا راویات را ذکر میکنیم و حالات دولت قبلی خود ذکر میکنیم و حالات خلافت را ذکر میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و در اونجا بنای دولت اسلامی را مانده و در کل بالای خصوصیات مکان از نگاه جغرافیایی و از نگاه حالات صحی و از نگاه حالات عمومیات و اقتصادی بارش بیان میکنیم و در کل میخوایم که یک تذکر بدهیم به شما حالات سختی هایی که اصحاب کرام در زمان دولت نبوی در مدینه متقبل شدن و پایه های خلافت اسلامی را گذاشتن تا به بالغ به سال و کما بیش خلافت اسلامی بر روی کره زمین حکم فرما بود صد سال امت تحت سیطره تواقیت و سلیبی ها و کفار قرار داشتند و بعد از او باز رب العالمین برای ما رحم کرده و ما را خلافت عالمین ها نبوه را عطا کرده الحمدلله بایی که ما شکران نعمت رب العالمین ادا که رب العالمین ما را اهل نعمت بزرگ دانست و ما از هستیم که واقعیت از رعیت خلافت اسلامی هستیم خصوصیات اوجگی هایی که امو سرزمینی که رسول الله صلی الله علیه و برای آن هجرت کرده بود کدام ها از چی خصوصیات داشت و چی ویژگی ها داشت در روایت مشهوری که امام احمد امام بخاری مسلم و ابن اسحاق رحمه الله از عایشه رضی الله عنها روایت میکنند میفهمند زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند آن زمین از جمله زمین های علای از بجل بود که بسیار و آن موجود بود و در قولهای آن خس و خاشاک آبهای گنده و بدبو جاری بود که با این اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار به تکلیف و مریض شدند ولی شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم را اللهی متعال از آن نجات دادند یعنی اولین روایت که میه در که رسول الله صلی الله علیه وسلم حجرت کرد در مدینه مدینه یک جایی بود که از نگاه محیطی یک محیط نامناسب داشت یک محیط داشت که قلها و دریاها و جویبارهایش گنده بود در جویبارهایش آبهای گنده جاری می بود خص و خاشاک جاری می بود از نگاه آب قاشا جای درسته نبود و در این حال ما و شما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلام ازی حالت مستثنا است چون رب العالمین یادشان داده ولی اصحاب همشان به تکلیف هستند و همشان مریض شدن و اینمی خصوصیتی است که یعنی رسول الله صلی الله علیه و که هجرت کردن که عبارت از مدینه یا یثرب بوده از گفتن یثرب نحی است ولی چون در قرآن کریم در سوره احزاب از کلمه یثرب نام برده شده ما به او یاد میگنیم جای یثرب این تو یک جای بود که از سرزمینایی بود که او وبا وجود داشت وبا با مرض همگانی اطلاق میشه یعنی که مرضی که همگی نه بگیره و او مرضی که بود مثلا مثلا طاعون بود مثلا تب بود که دامنگیر تمام اصحاب کرام شده بود و در موطأ امام مالک از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه روایت است که فرمودن زمانی که ما در مدینه آمدیم ما را وبازت یعنی مرض را هموگنی بسیار تب شدید داشتیم یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلام بیرون شدن اصحاب کرام نشسته نفل می‌خواندند و رسول الله صلی فرمود که قائد کس نصف نماز قائما است یعنی کسی که نشسته نماز می‌خونه نصف نماز کسی است که استاده نماز می به این که تب و مرزی و شدت به حال رسیده بود که اصحاب کرام يعني قیام کرده در نماز نمی نشسته نغافله با خواندن و رسول الله حدیث بیان کرده بود که سلات قاید که نصف سلات قایم است یعنی حدیث است عائشه رضی الله عنه روایت می کند که زمانی که بلال رضی الله عنه باعث تاب شدید شد یعنی کہ شدید بسیار گرفته بودشه می فرمودن که یا الله بالای شیبه ابن رابیع عتبہ بن رابیع و امیه بن خلف لعنت کن که ما را از خاک خودمان یعنی از سرزمین مکه به سرزمین وبا وبابرین کردند یعنی ما را به مدینه آوردن و بعدن رسول الله صلی الله علیه و دعا کردن و دعایشانی بود که یا الله مدینه را قسمی برای ما محبوب و خوشایند بگردان قسمی که را برای ما محبوب و خوشایند کرده بودی بلکه از آن هم بیشتر یا الله در سا در پیمانه ما سا پیمانه است که از چار لب تشکیل شده یا رب العالمین در پیمانه ما برکت بنداز یا رب العالمین در های ما برکت بنداز و مدینه را برای ما از امراض ها سهدیاب بگردان یعنی مدینه را برای ما از امراض ها سهدیاب بگردان و تبش را بر جحفا نقل کن یعنی از ما دور کن یا الله م برکات نازل کن یارب العالمین در مدینه دو برابر مکه برکت نازل کن اللهم حبب الینا مدینته که حببنا مکه او اشد حب یعنی یا رب العالمین مدینه برای ما اینقدر محبوب بگردان قسمی که مکه را برای ما محبوب گشتانده بودی بلکه از او شدیدتر و بیشتر یا الله در سا و در پیمانه ما برکت به و یا رب العالمین در لب‌های ما به انداز و مدینه را برای ما از مرض‌ها ها یاب بگردان و تب‌هایش را بر جهفان نقل کن یا الله بر مدینه دو بر مکه برکت نازل کن در یک روایت دیگه هم است که رب العالمین مدینه را حرام گشتانده بود یعنی در اونجا شکار کردن پرنده‌هایش و قطع کردن جنگلاتش همش نهی بوده و اداره امن بوده در هژ نگاه بر مسلمانان و عایشه رضی الله عنها که ما به مدینه آمدیم و مدینه در سرزمین های الله وجل از همه بیشتر وبساطگی بود و در قول بطحان بطحان یعنی که و توی بطحان آب بد بجار جاری بود یعنی قول بود که آب بسیار گنده و جاری بود یعنی عایشه رو میگه که وقتی که ما در مدینه اومد مدینه از سرزمین های رب العالمین که از همش که از زیاد سرزمینی بود تو اینجا امراض همگانی زیاد بود و به قلهش آب گنده و بد جاری می بود ابن بطال رحمه الله میفرماید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدن که اصحاب کرام رضی الله عنهم مریض شدن. تب و بالایشان جمع شده بود یعنی دو من از هم تب گرفته بودند همگانی در دلشان یک گونه حراس پیدا شد که اصحاب رضی الله عنهم با مدینه نفرت پیدا کنند یعنی تو نشه که یک بار اصحاب دو قسمت مدینه متنفر شوند زیرا در نفس انسان این طبیعت است چیزی را که بد می‌بیند از آن در مقابل دان سخت میشه و مشکل است که هون مسئله را قبول کند به این خاطر رسول هم باز دعا کردن که یا رب العالمین اللہ از وجل دعا کردن و سوال کردن رب العالمین که یا رب العالمین مدینه را مانند مکه برایشان محبوب و دوست داشتنی کند و حتی دعا کردن که مدینه را یعنی محبت مدینه را از مکه شدیتر به دل اصحاب کند و در مدینه به اصحاب رسول الله صلی اللہ صلی گرفت یعنی اکثر اسحاب رسله به تب مبتلا شدن تا جایی که عایشه رضی الله عنها در مورد پدر خود ابو بکر صدیق رضی الله عنه و در بلال رضی الله عنه می که من به رسول الله صلی الله علیه و السلام گفتم که یا رسول الله صلی الله علیه و ایشان یعنی ابو بکر صدیق رضی الله عنه و بلال رضی الله از اثر تب حرف های غیر موزون میزنن یعنی کلمات رو ب... میگن که ده فکرشان نیست یعنی چی معنا یعنی نمیدونن که چی میگوین به اراده حرف میزنن یعنی ارادهشان نیست شما دیده باشین بعض وقتا تب که میگیره میگه انایی میگن نه یعنی به این معنا که تب بالایشون بسیار زور شده بود که بالای گپای خود کنترل نداشتن به اراده و به کنترل گپ میزدن به این اندازه بالایشون تپ زور شده بود حالا چنان سخت شده بود که بعضی از مهاجرین طاقت کردن توانستند و حتی بعضی ها چی شدن؟ مرتد شدن در روایت از بخاری و مسلم آمده که هشت قبیله از اکل عین به زما خوانده میشه نظر رسول الله صلی الله علیه و وسلم آمدن با اسلام بیعت کردند و بعد از آن از اثر موسم مدینه مریض شدن و خارج شدن و در یک روایت دیگر آمده است که نظر رسول الله صلی الله ورس و سلم آمدن و گفتند که ما مردم چوپان هستیم و شهری نیستیم و استاب های شکایت می کردند یعنی مدینه حالتی بود که بسیار سخت در روایت دیگه است که قبیله از اوکل و به زمق عین خوانده میشه یا کسایی بودن که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و رسول الله صلی الله مس شکوائیت کردن رسول الله صلی الله مس کرد که از شهر مدینه دور به یک اهالی که شطرهای غنیمت ده اونجا بستانه بود اونجا ببرن که اینا از باول شتر استفاده کنند و از شیر شطر استفاده کنن به خاطر ازی که با موحد سازگار شوند وقتی که اینا رفتن اونجا مرتج شدند و امو نه که از شتورا بود او را شهید کردن به قتل رساندن و فرار میکردن وقتی که فرار میکردن رسول الله صلی الله علیه و فرستاد وقتی که دستگیر شدن، پس آمدند که, آمدن که چوپان شتورا را کور کرده رسول الله صلی الله علیه و کرد و بعد از به خاطر از اینکه دزد طریق یا دستایشان که پایشان و بعد از او یا را بالای یک رگ سرخ انداخت تا که شدن. شدند به این معنا که یک تعداد مردم از شدت سختی های مدینه مرتاد شدن، و از دارالاسلام بیرون شدن و بیرون شدن در اسلام از باعث شد که یا مرتد شد یعنی به این که سختی ها مندازی بود که باعث شد که بسیار کسا مرتد شد روایت دیگری از بخاری و مسلم آمده است که جابر رضی الله عنه روایت میکند که یک اعرابی نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم اعرابی بود دین انشین با اسلام بیعت کرد و بعد از آن از اثر حالات مدینه به تب مبتلا شدند نظر رسول الله صلی و که رسول الله صلی و گفت الله ما را از بیعت معاف کن یعنی ما بیعت کرده بودیم ولی حالات مدینه سخت است. ما نمیتونیم که به با بیعت خود ادامه بتیم. یعنی قولی که داده بودیم به او وفا کرده نمیتونیم. ما را از این محاف بگرده بیعت. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار کرد و اجازه نداد که عربی از مدینه بیرون شد. پس این قسمت ما و شما آمدیم در سوال خودا. به این قسمت خاتمه میتیم و خلاصه در سمایی بود که ما خواستیم خصوصیات دار رای که رسول الله صلی اللہ صلی کرده بود بیان کنیم و خصوصیات دار را شما در روایتهای متعدد بیان کردیم که یک داری بود که از هر نگاه بسیار سخت بود دار شدیدی بود داری بود که مشکلات داشت و بعضی وقتا رسول الله صلی حتی بدلشان حراس پیدا شده بود که ما که اصحاب به مدینه نفرت پیدا کنند بعد از او دعا کردند د و حتی طبق اندازه شدید بود که ابوبکر صدیق را ها بابلال را ها به اراده حرف می زدن. پس ما می بینیم که داره که رسول الله سانسان به او هجرت کرده بود یک داره نبود که از هر نگاه بسیار دارای ویژگی ویژگی‌های خاص خاص باشه و آب و خوب داشته باشه و فضای خوب داشته باشه و دارای هوای خوب باشه چون هدف رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد در اسلام بود و بهترین جای برش مدینه بود علان که از نگاه محیطی و از نگاه صحی و از نگاه آب هاش مدینه و از نگاه فضا و از هر نگاه درست نبود ولی باز هم با صبر و با استقامت و با حوصله پایه های دولت اسلامی را بنانا الآثان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته